حکایت روزی به غرور جوانی سخت رنده بودم و شبانگاه به پای گریبهی سوست مانده پیرمردی ضعیف از پس کاروان همی آمد. گفت چه نشینی که نجای خوفتن است. گفتم چون روم که نپای رفتن است. گفت این نشنیدی که صاحب دلان گفتند، رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن. ای که مشتاق منزلی مشتاب، شتاب، پند من کار بند و صبر را موز. اسب تازی دو تک رود به شتاب، بشت را هسته می شب و روز.